کانال تلگرامی هزار افسان، داستانهای افثانی صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عزیمه علی گلزاده داستان چگونه شش مرد دور دنیا سفر کردند یکی بود یکی نبود زیر گنبد که مردی بود که همه ی هنرها رو یاد گرفته بود او در جنگ شرکت کرد و با شجاعت جنگید وقتی جنگ تمام شد حقوقشو گرفت سه چهارم و اون رو تو جیبش گذاشت و راهی سفر شد و گفت صبر کن این به درد من نمیخوره باید آدمای مناسبی پیدا کنم اون وقت پادشاه همه ثروتش رو به من خواهد داد او با ناراحتی به طرف جنگل رفت و مردی را دید که شش درخت رو مثل پرک ها از ریشه بیرون آورد او به مرد گفت حاضری کار من بشی و با من سفر کنی مرد جواب داد بله اما اول باید این چند تکه چوب رو برای مادرم به خونه ببرم. او یکی از این درختار را برداشت و، دور پنج تا دیگه پیچید و بعد بسته را رو روی شنش گذاشت و به راه افتاد. کمی بعد پیش اربابش برگشت. ارباب به او گفت: حالا ما دو نفر میتونیم دور دنیا بگردیم. اونها کمی جلوتر به یک شکارچی رسیدند که تفنگ به دوش، روی زمین زانو زده و چیزی را هدف گرفته بود. ارباب از او پرسید شکار چی؟ کجا رو نشونه گرفته ای؟ مرد جواب داد خیلی جلوتر از اینجا پرندهی ای روی شاخه درختی نشسته میخوام چشم شو با تیر بزنم. ارباب گفت با من بیا اگه ما سه نفر با هم باشیم به راحتی میتونیم دور دنیا را بگردیم. شکارچی قبول کرد و با اونها همراه شد. اونها به هفت آسیاب بادی رسیدند که پرهایشون به سرعت میچرخید و هیچ بادی نمیوزید. مرد گفت: نمیفهمم این پرها چطور میچرخند، حتی یک باد ملایم هم نمیوزه. او همراه خدمتکارانش کمی جلوتر رفت و مردی رو دید که روی درختی نشسته و یکی از سوراخ‌های بینیش رو گرفته و با دیگری به بیرون فوت میکنه. مرد پرسید، آقا اون بالا چیکار کار میکنی؟ و جواب شنید، خیلی جلوتر هفت آسیا به بادی هست من دارم اونها رو میگردونم. مرد گفت، با من بیا اگر ما چهار نفر با هم باشیم میتونیم براحتی دور دنیا رو بگردیم. آسیابون، از درخت پایین اومد و با اونها همراه شده پس از مدتی مردی را دیدند که روی یه پای ایستاده و مشغول باز کردن بندهای دور پای اش هست ارباب گفت مثل اینکه خودت رو برای استراحت آماده کنی و جواب شنید من یک دونده هستم و برای اینکه زیاد تون ندوام بندهای یکی از پاهام و باز کردم چون اگر با دو دوپا بدوام سرعتم از پرنده ها هم بیشتر میشه پس با من بیا اگر ما پنج نفر با هم بشیم میتونیم به راحتی دور دنیا سفر کنیم. اونها به راه افتادند و کمی جلوتر مردی رو دیدند که کلاه کوچکی روی سرش گذاشته و اونطوری کج گذاشته که یه گوشش رو پوشونده. ارباب به او گفت چرا کلاه تو روی یه گوشت گذاشتی؟ اینجوری مثل ها شدی؟ و جواب شنید مهم نیست چون اگر کلاهمو صاف بذارم چنان سرمایی شروع میشه که حتی پرنده یاسمون هم یخ میزندن و میمیرن ارباب گفت پس با من بیا اگر ما شش نفر با هم باشیم میتونیم به راحتی دور دنیا سفر کنیم شش مرد به راه افتادند و به شهری رسیدند که پادشاه اونجا اعلام کرده بود هرکس با دخترش مسابقه دو به دو برنده بشه همسر او خواهد شد و اگه شکست بخوره سرش بریده میشه این قصه به گوش ارباب رسید و قبول کرد مسابقه بده ولی گفت خدمتکار من به جام خواهد دوید پادشاه جواب داد پس اگر بازنده بشین سر هر دوی شما بریده خواهد شد ارباب قبول کرد و بعد بندهای اونی یکی پای دونده را هم بست و به او گفت زرنگ باش و کاری کن که برنده شویم قرار شد هر کس که بتونه از رودخونی که خیلی دور بود آب برداره و زودتر برگرده برنده اعلام بشه دونده و دختر پادشاه هرکدوم یه سطل برداشتند و همزمان شروع به دویدن کردند اما وقتی دختر پادشاه تازه کمی جلوتر رفته بود دونده ناپدید شد و مثل باد از او سبقت گرفت در مدت کوتاهی او به رودخونه رسید و سطل را پر کرد و برگشت اما هنوز نصف راه را نرفته بود که شدیداً خوابش گرفت سات روز زمین گذاشت و دراز کشید و خوابش برد اما او سر روی جمجمه اسب گذاشته بود و جاش زیاد راحت نبود به همین دلیل ممکن بود خیلی زود بیدار بشه کمی بعد دختر پادشاه هم که دونده نسبتا خوبی بود به رودخونه رسید سطلشو پر کرد و با عجله برگشت در نیمه راه وقتی چشمش به دونده افتاد که به خواب رفته بود خوشحال شد و گفت حالا سرنوشت رقیبم در دست منه سپس مرد رو خالی کرد و به دویدن ادامه داد خوشبختانه شکارچی که روی برج قصر ایستاده بود همه ماجرا را با چشمای تیزبینش دید وگرنه همه چیز از دست میرفت. او گفت آه نباید دختر پادشاه از ما جلو بیفته سپس تفنگشو پای کرد و به دقت نشونه گرفت و به طرف جمجمه است که زیر سر دونده بود بدون اینکه آسیبی به دوستش برسونه شلیک کرد دونده بیدار شد و از جا پرید و دید سطلش خالی و دختر پادشاه هم ازش جلو زده اما امیدش امیدشو از دست نداد و به طرف رودخونه دوید و یه بار دیگه ستل و پر کرد و ده دقیقه زودتر از دختر پادشاه به مقصد رسید او گفت چه مسابقه راحتی بود من فقط کمی به پاهام نرمش دادم پادشاه عصبانی شد و دخترش هم خیلی ناراحت بود که به یک خدمتکار معمولی باخته اونها با هم مشورت کردن تا ببینن چطور میتونن دونده و همه همراهانشو نابود کنن پادشاه به دخترش گفت فهمیدم اصلا نگران نباش اونا دیگه هرگز به خونه بر نمیگردند و گفت حالا باید جشن بگیرید و بخورید و بیاشامید بعد همه را به اتاقی برد که کف اون و درها آهنی بودند و پنجره هم حفاظ آهنی داشتند داخل اتاق میزی پر از غذاهای خوشمزه قرار داشت پادشاه به اونها گفت وارد شوید و خوش باشید و به محض اینکه همه وارد شدند در رو بستند و غفر کردند بعد آشپز را صدا زد و دستور داد زیر اتاق آتیش بزرگی روشن کند و اونقدر منتظر بمونند تا آهن قرمز داغ بشه آشپز اطاعت کرد و شش مرد که دور میز نشسته بودند احساس کردند هوا خیلی گرم شد اونا فکر کردن چون خیلی غذا خوردن گرمشون شده. اما وقتی گرما بیشتر و بیشتر شده اونها خواستن بیرون برن متوجه شدن که تمام درها و پنجرهها قفل شده و فهمیدن پادشاه قصد داره اونا رو از بین ببره. مرد کلاکج گفت ولی او موفق نخواهد شد. الان چنان سرمایی به وجود میارم که آتیش طاقت نیارا روش رو کم کنه. و صاف کرد و ناگهان هوا به قدری سرد شد که همه غذاهای روی میز یخ زدند و پس از گذشت چند ساعت پادشاه که فکر میکرد اونا حتما تا به حال از گرما مردن در را باز کرد و وارد اتاق شد اما هر شش مرد صحیح و سالم بودند و گفتند خیلی خوشحالن که میتونن بیرون بیان و خودشون رو گرم کنن چون هوای سرد اتاق همه چیزو منجمد کرد پادشاه با عصبانیت به سراغ آشپز رفت و او رو سرزنش کرد چه چرا دستوراتش اجرا نکرد اما آشپز جواب داد من اینجا رو به اندازه کافی گرم کردم خودتون بیاین ببینین؟ بعد چشم پادشاه به آتیش بزرگی افتاد که زیر اتاق زبانه میکشید و فهمید که با این روشم نمیتونه به اون شش نفر صدمه ای بزنه پادشاه دوباره به فکر رو رفت تا ببینه چطور میتونه از دست این مهمانهای ناخوانده خلاص بشه او ارباب احضار کرد و گفت اگه دست از دختر من برداری؟ هرچقدر تلا بخوای به تو میدم. مرد جواب داد قبول میکنم. اله حضرت من فقط به اندازی که خدمتکارم توان حمل کردن اونو داشته باشه از شما تلا میگیرم و دست از سر دخترتون برمیدارم. پادشو خوشحال شد و مرد گفت چهارده روز دیگر برای بردن تلاها برمیگردم. بعد همه خیاطهای سرزمین رو جمع کرد و گفت بنشینند تا چهارده روز مشغول دوختن یک کیسه بزرگ شدند وقتی کیسه آماده شد اون روشونه مرد قوی همان مردی که درختها را از ریشه میآورد گذاشت و با هم نزد پادشاه رفتند پادشاه گفت چه مرد قدرتمندی عجب کیسه بزرگی رو دوشش گذاشتی به اندازه یک خونه است او که خیلی ترسیده بود پیش خودش گفت یعنی چقدر طلا میتونه با خودش ببره بعد او چند کیلو طلا را که شانزده مرد قوی اون را بلند کرده بودند برای اونها آورد اما مرد پرزور همه طلاها رو با یه دست برداشت و تو کیسه ریخت و گفت پس بقیهش کو این که فقط تی کیسه رو پر کرد پادشاه مجبور شد بارها بارها افرادش رو برای آوردن داراییش بفرسته اما مرد قوی همه اونها رو به داخل کیسه ریخت و با این حال فقط نصف اون پر شده بود او فریاد زد بیشتر بیاورید این خورده ریزها که به جایی نمیرسند به این ترتیب هفت هزار ارابه پر از طلاهای تمام سرزمین ها را برای او آوردند و مرد قوی آنها را داخل کیسه ریخت او گفت دیگه زیاد سختگیری کنم اگه یه مقدار دیگه هم بیارید کافی خواهد بود وقتی همه طلاها و ها را در کیسه جاداد سر اون هم باز خالی بود و مرد گفت دیگه بسه اگه کمی خالی باشه درش راحتتر بسته میشه. او سر کیسه را گره زد و رو پشتش گذاشت و با همراهانش به راه افتاد. شاه که دید یک نفر همه ثروت یک کشورش رو به خودش می‌بره عصبانی شد. افرادش رو به تعقیب اونها فرستاد تا مرد قوی رو با کیسهش برگردونن. اون خیلی زود خودشون رو به اون شش مرد رسوندند و فریاد زدند: شما مجرم هستید یا طلاها را برگردونید یا همگی کشته خواهید شد. آسیابان گفت چی گفتی ما مجرم هستیم مسین که دلتون میخواد کمی پرواز کنید بعد یکی از های بینیشو رو گرفت و با دیگری به طرف اونها فوت کرد افراد پادشاه و ارتش او به هوا رفتن دو پخش و پلا شدند فرمانده اونها فریاد زد و تقاضای بخشش کرد او گفت یک جنگجوی شجاست و هفت بار در جنگ زخمی شده و سزاوار چنین تنبیهی نیست آسیابان اونو پایین آورد و گفت نزد پادشاه برگرد و بگو اگه یه بار دیگه یکی از افرادش رو سراغ ما بفرسته دیگه به کسی رحم نخواهیم کرد. وقتی پیغام به گوش پادشاه رسید گفت بذارید برن و اونها جادوگرند. ششمرد به خونه برگشتند تمام اون طلاها را تقسیم کردند و همگی تا آخر عمر خوش و خورم زندگی کردند. کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افثانه ای صوتی <علا Cooking> نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقط نشانی وبلاگ ما m e